ژن خودخواه، فصل سوم بخش سوم برای یک ژن آللها رقیبان مرگاوری هستند. اما ژنهای دیگر بخشی از محیط به شمار می میآیند و در ردیف دما، غذا، شکارگرها یا همراهان قرار دارند. اثر ژن به محیط بستگی دارد و محیط ژنهای دیگر را نیز شامل می شود. یک ژنگاهی در حضور یک ژن خاص دیگر اثری کاملا متفاوت از آن تأثیری دارد که در حضور مجموعه دیگری از ژن‌های همراه خود دارد کل مجموعه ژن‌هایی که درون یک بدن قرار دارند یک نوع فضا یا زمینه ژنی به وجود می‌آورند که باعث تغییر یا تعدیل اثر هر ژن خاص می‌شوند اما حالا به نظر میرسد با یک تناقض مواجهیم اگر ساختن یک کودک کاری گروهی و بسیار پیچیده است و اگر هر ژن نیاز به هزاران ژن همکار دیگر دارد تا کارش نتیجه دهد چگونه میتوان این را با آن تصویری تطبیق دهیم که من از ژن تقسیم ناپذیر که مثل بوز کوهی نامی را از بدنی به بدن دیگر میپرد ایجاد کردم با این عامل حیاتی که آزاد و بیفیال خودخواه است. همه آن حرفا بی بود اصلاً چنین نیست شاید این شاخ و برگ مرا کمی از مسیرم دور کرده باشد ولی بی رب نگفتم و در واقع تناقضی در میان نیست می شود با استفاده از یک خیاس دیگر موضوع را شهر داد. یک پاروزم تنها نمیتواند در مسابقه قایقرانی بین آکسفورد و کمبریج برنده شود هشت همکار لازم است هر کدام آنها باید برای نشستن در جای خاصی از قایق تخصص داشته باشند در سینه قایق در پاشنه پشت سکان و غیره راندن قایق یک کار گروهی است با این حال بعضی در کارشان از بقیه ماهرترند فرض کنید یک مربی بخواد از میان گروهی داوطلب نفرات مورد نظر خود را انتخاب کند بعضی را برای جایگاه سینه بعضی را برای سکان همینطور تا آخر حالا فرض کنید که به صورت زیر آنها را گزینش می کند. در هر روز سه دسته پاروزن را کنار هم امتحان می کند و به صورت اتفاقی جای آنها را عوض می و میگذارد با هم مسابقه دهند. بعد از چند هفته کم کم معلوم می شود که نفرات قایقای برنده اغلب افراد معینی هستند. و آنها برچسب پاروزن خوب زده می شود. درون قایق های کندرو تر افراد دیگری هستند که به تدریج از میدان به در می شوند اما گاهی ممکن است یک پاروزن خوب عضو یک قایق کندرو باشد دلیل ضعیف بودن همگروه هایش یا بدبیاری اوست مثلا شاید بودن باد مخالف فقط میتوان گفت که مردانی که در قایق برنده هستند روی هم رفته بهترند این پاروزن ها همون ژل هستند رقیبانی که با هم بر سر یک جا در قایق رقابت می‌کنند آلل‌هایی هستند که بالقوه می‌توانند در طول کروموزوم جای خاصی را اشغال کنند توند پارو زدن به ساخت بدنی مربوط می‌شود که بقای خوبی دارد باد محیط بیرون است مجموعه افراد داوطلب خزانه ژنی است تا آنجا که به ماندگاری هر تک بدن مربوط می‌شود همه ژن‌های آن درون یک قایقند چهبسا که یک جن خوب گرفتار همراهان بد شود یا خودش را در بدنی بیابد که در آن جن کشنده هست و آن جن بدن کودک را از بین میبرد در این صورت جن خوب هم همراه آن بدن از بین میرود گرچه این بر یک بدن اتفاق میافتد های دیگر آن جن خوب در بدنهای دیگر هستند که در آنها از جن کشنده خبری نیست بعضی از نسخه های آن خوب بر اثر صحیم بودند. با جنه های کشنده در یک بدن از بین می روند و بسیاری هم به دلیل بدشانسی های دیگر نابود می شوند. مثلا وقتی بدن مرد اصابت رعد و برق واقع می شوند. اما بنابرای تعریف اقبال یعنی خوب یا بد آمدن قرعه اتفاقی است و ژنی که مدام بد می فقط بد بیار نیست. ژن بدی است. یکی از ویژگی‌های پاروزن خوب کار تیمی است این توانایی که با بقیه افراد هماهنگ باشد و همکاری کند شاید این به اندازه داشتن بازوهای قوی مهم باشد همانطور که در مورد پروانه‌ها دیدیم انتخاب طبیعی ممکن است با وارونگی یا انواع دیگر ها در قطعات کروموزوم یک ژن مرکب را ویرایش کند و به این ترتیب هایی که همکاری خوبی با هم دارند در یک جا جمع شوند. همچنین ممکن است جنهایی که از نظر فیزیکی اصلا ربطی به هم ندارند، به خاطر سازگاری دوجانبه مورد انتخاب واقع شوند. به ژنی برتری داده می شود که با ژنهایی که احتمالا در های متفاعلی ملاقات می کنند یعنی با بقیه ژن‌های خزانه همکاری خوبی داشته باشد. برای مثال در بدن یک گوشخوار، بعضی خصوصیات مهم است، از جمله دندان تیز و برنده، روده مناسب برای هضم گوشت و خیلی چیزهای دیگر. از آن طرف در یک گیاهخوار کار آمد دندان تخت و ساینده لازم است و رودش باید خیلی دراز باشد و شیمی حزم متفاوتی داشته باشد. در خزانه ژنی یک گیاهخوار هر ژن جدیدی که به دارندهش دندان تیز گوشتخاری بدهد زیاد مطلوب نیست. نه به این دلیل که کلا گوشتخاری بد است بلکه به این دلیل که بدون داشتن روده مناسب گوشتخوری نمیشود به راحتی گوشت خورد مگر اینکه روده مناسب و همچنین همه ویژگیهای دیگر زندگی گوشتخاری را دارا بود ژن دندان تیز گوشتخار ذاتن ژن نیست چنین ژنی فقط در یک خزانه ژنی که در آن ژنهای خاص گیاهخوری حاکمیت دارند ژن بد محسوب میشود این یک مفهوم ظریف و پیچیده است پیچی دستی را محیط کار ژن را تا حد زیادی جنهای دیگر تشکیل می دهند. که هر کدوم آنها نیز بر مبنای تواناییشان در همکاری با محیط خود که همکاری با جنهای دیگر است انتخاب می شوند. شاید با استفاده از قیاس بهتر بتوان این نکته را نشان داد. گرچه در این قیاس نه از یک تجربه روزمره بلکه از نظریه پردازی هایی که در فصل پنجم معرفی و به رقابت های تهاجمی بین حیوانات می شود استفاده می‌کنیم. بنابراین بحث بیشتر در مورد نکته را به آخر فصل پنجم موکول می‌کنم و برمیگردم به پیام اصلی این فصل. یعنی اینکه بهترین واحد بنیادی انتخاب طبیعی نه گونه است، نه جمعیت، نه حتی افراد، بلکه واحد کوچکی از ماده ژنی است که برای راحتی کار برچسب جن ژن را رویش گذاشته ایم. اساس این بحث همونطور که قبلا گفتیم این فرض است که ژن ها بالقوه نامیرا هستند. در حالی که بدن و همه دیگر واحدهای های عالیتر کوتاه عمرند این فرض بر مبنای دو واقعیت است، اول تولید مثل جنسی و چلیپایگی و دوم میرا بودن هفراد. اینها واقعیت های انکار اما مانعی نمی شوم که علت آنها را مورد سوال قرار دهیم چرا ما و بیشتر دیگر ماشینهای بقا از تولید مثل جنسی استفاده میکنیم چرا در های ما چلیپایگی وجود دارد و چرا ما تا ابد زنده نمی بانیم؟ این سوال که چرا ما از پیری میمیریم سوال مشکلی است و جزیات آن خارج از گستره این کتاب است علاوه بر دلایل خاص چند دلیل کلیتر در پاسخ به آن ارائه شده است برای مثال یک نظریه این است که کوهلت نشان دهندگی انباشتگی زیانبار اشتباهات در نسخه برداری ها و دیگر آسیب های ژنی در طول زندگی فرد است نظریه دیگر از سرپیتر پیتر مدوار نمونه خوبی است از توجه به انتخاب ژنی در مورد تکامل مداور ابتدا استدلال سنتی را رد می کند وانند اینکه مردن افراد ایسارگری گردین به بقیه افراد گونه محسوب می شود. زیرا اگر مردنی در کار نبود، افرادی که دیگر نمی تولید مست کنند بیهوده دنیا را شلوغ می کردن. همطور که مداور خاطر نشان می کند، این استدلال در باطل است و آن چیزی را که میخواهد اثبات کند مفروض به حساب میآورد. مثلا اینکه حیوانات پیر، فرتودتر از آنند که تولید مثل کنند. به علاوه این استدلال برای توجیه انتخاب گروه یا انتخاب گونه توضیح محکمی نیست گرچه آن قسمت بحث را می توان به صورت دیگری موجه تر بیان کرد. در نظریه خودم مداور منطق زیبایی پنهان است. اکنون با آن میپردازیم. قبلا پرسیدیم که ویژگی کلی ژن خوب چیست و تعیین کردیم که یکی از آن ویژگی ها خودخواهی است. اما یک ویژگی مهم دیگر جنهای موفق تمایل به عقب انداختن مرگ ماشینهای بقایشان دست کم تا بعد از تولید مثل است. بیشک بعضی از اموزاده ها یا اموهای شما در کودکی مرده اند. اما نه یکی از اجداد شما اجداد در کودکی نمی ژنی که باعث میشود دارندهش بمیرد جن کشنده نام دارد ژن نیمه کشنده باعث ناتوان شدن فرد می شود به طوری که احتمال مرگ بر اثر علتهای دیگر زیاد شود هر ژن بیشترین تأثیرش را بر بدن در یک دوره خاص نشان میدهد و ژنهایی کشنده و نیمه کشنده از این قاعده مستسنا نیستند بیشتر جنها اثرشان را در دوران جنینی نشان میدهند بعضی در دوران کودکی، بعضی دیگر در جوانی، بعضی در میانسالی و تعدادی در سن پیری، کرم پروانه و پروانه که از آن پیدا می می‌شود، مجموعه‌ای ژن‌های کاملاً یکسانی دارند. واضح است که این تمایل وجود دارد که ژن‌های کشنده از خزانه ژنی کنار گذاشته شود و به همان اندازه واضح است که در یک خزانه ژنی یک ژن کشنده عمل کن. پایداری و ماندگاری بیشتری خواهد داشت نسبت به یک ژن کشنده زود عمل کن. ژن کشنده که در یک بدن مسیم قرار دارد. اگر اثر مهلک خود را تا زمانی که آن بدن چند تولید مثل انجام دهد بروز ندهد هنوز در خزانه ژنی موفق به حساب میآید. برای مثال ژنی که باعث می شود فرد پیر دچار سرطان شود ممکن است به تعدادی از فرزندان آن فرد منتقل شود. زیرا صاحب آن جن قبل از به سرطان تولید هایی انجام داده است. از آن سو جنی که باعث می شود فرد جوان دوچار سرطان کشنده شود اصلا به هیچ یک از فرزندان آن فرد منتقل نمی شود. بنابراین طبق این نظریه نابودی بر اثر کهولت فقط یک محصول جانبی انباشتگی های کشنده و نیمه کشنده دیر عملکن است که به دلیل دیر عمل کردنشان اجازه یافتهاند از صافی انتخاب طبیعی بگذرند جنبه‌ای که خود مدار روی آن تکیه می کند این است که در انتخاب به ژن‌های برتری داده می‌شود که عمل ژن‌های کشنده دیگر را عقب می‌اندازند و همچنین به ژن‌های اولویت داده می‌شود که عملکرد ژن‌های خوب را تسریع می‌کنند شاید مقدار زیادی از تکامل به تغییراتی مربوط شود که تحت کنترل ژنها، و در مرحله شروع فعالیتشان رخ داده است توجه به این نکته مهم است که این نظریه هیچ پیشفرزی را در مورد سن خاص تولید مثل در نظر نمی گیرن نظریه مداوار با در نظر گرفتن این پیشفرز که همه افراد در هر سنی به یک انداز احتمال بچه دار شدن دارند بلافاصله فاصله انباشتگی جنهای فرطوط دیرعمل را در خزانه ژن پیشبینی می کند و گرایش کمتر به تولید مستر پیری را پیامد سانویه آن در نظر می گیرد. یکی از مشخصات خوب این نظریه این است که ما را به سمت های نسبتا جالبی هدایت می کند برای مثال می توان از آن چنین برداشت کرد که اگر بخواهیم طول عمر انسان را زیاد کنیم دو راه کلی وجود دارد اول اینکه تولید مثل را تا پس از سن خاصی ممنوع کنی مثلا از چهل سالگی بعد از چند قرن میشود آن را تا پنجاه سالگی بالا برد و همینطور بیشتر کرد قابل تصور است که از این طریق میتوان عمر انسانها را تا چند قرن افزایش داد ولی بعید از کسی واقعا این راه را امتحان کند راه دیگر این است که سعی کنیم جنها را گول بزنیم طوری که تصور کنند بدنی که در آن هستند جوانتر از سن واقعی است در عمل این به معنی پی بردن به تغییراتی است که در محیط شیمیایی درون بدن طی پیر شدن می‌دهد. میدهد همین ها میتواند ای باشد که با آن جنهای کشنده دیر کن فعال شوند. با شبیه سازی شیمیایی سطحی یک بدن جوان شاید بتوان از بکار افتادن جنهای زعیف کننده عملکن جلوگیری کرد. نکته جالب این که لازم نیست نشانهای شیمیایی دوری پیری به مفهوم عالی آن خود تضعیف کننده باشند. برای مثال فرض کنید به طور تصادفی تجمع ماده S در بدن افراد پیر بیشتر باشد تا در افراد جوان. خود S میتواند یک ماده کاملا بیزرر باشد. شاید یک ماده غذایی باشد که طی سالها در بدن انباشته شده است اما خود به خود هر ژنی که تصادفاً در حضور اس اثر تضعیف کننده دارد و در غیر این صورت اثر آن خوب است از خزانه ژن برگزیده شده و در نتیجه ژنی برای مردن از پیری به حساب می آید چاره کاری نیست که آن اس را از بدن خارج کنیم چیزی که به این نظریه جنبی انقلابی می این است که اس فقط یک برچسب برای پیری است. پزشکی که متوجه می شود تجمع S منجر به مرگ می شود احتمالا S را نوعی سم در نظر می گیرد و سعی می کند رابطه علت و معلولی مستقیمی بین S و عملکرد بدن مسئله دار پیدا کند. ولی در مورد این نمونه فرضی شاید وقتش را هدر می دهد. همچنین ممکن است یک ماده ایگرگ وجود داشته باشد با برچسب جوانی به این معنا که تجمع آن در بدنهای جوان بیش از بدنهای پیر باشد باز همین احتمال هست هایی که در حضور ایگرگ اثر خوبی دارند و در عدم حضور ایگرگ اثر تضعیف کننده دارند انتخاب شوند بدون داشتن راهی برای پی بردن به اینکه اس و ایگرگ چه هستند این گونه مواد کم نیستند میتوان به راحتی پیش بینی کرد هرچه چه ویژگی های یک بدن جوان را در یک بدن پیر شبیه سازی کنیم آن بدن پیر عمر درازتری خواهد داشت گرچه آن خواص ممکن است ظاهری جلوه کنند باید تاکید کنیم اینها فقط حدسیات ما بر حسب نظریه مدوار است گرچه نظریه مدوار در مفهوم منطقی خود تا حدی به حقیقت نزدیک است ولی به این معنی نیست که حتما تنها دوزی صحیح در هر مورد از زوال بر اثر پیری باشد آنچه از نظر بحث حاضر مهم است دیدگاهی است که در آن انتخاب ژن در تکامل مورد توجه است و در این استدلال که در افراد هنگام پیری تمایل به مرگ وجود دارد اشکالی پیش نمیآورد فرض میرا بودن فرد که کانون بحث این فصل قرار دارد در چارچوب این نظریه قابل توجیه است توجیه فرض دیگری که با آن نپرداختم یعنی وجود تولید مثل جنسی و چلیپایگی مشکل تر است لازم نیست همیشه چلیپایگی رخ دهد در مگسی میوهی نر چنین چیزی روی نمیدهد در مگسی میوه ماده هم ژنی وجود دارد که از اثر چلیپایگی جلوگیری می کند. اگر میخواستیم جمعیتی از مگسها را پرورش دهیم که در همهشان این ژن باشد، در یک خزانه کروموزوم، خود کروموزوم واحد غیرقابل تقسیم و اصلی در انتخاب طبیعی می شود. در واقع، اگر تعریف را تا نتیجه مندقیش دنبال کنیم، کل یک کروموزوم را باید یک ژن به حساب آوریم. باز آن وقت هم جانشینی برای جنسیت وجود می داشت. شته های ماده می توانند زادگان ماده بدون پدری را زایی کنند که در هر کدام تمام های مادر وجود داشته باشد. از غذا شد جنین که در زهدان مادر است درون خودش یک جنین کوچکتر داشته باشد. بنابراین ممکن است یک شته همزمان یک دختر و یک مادر بزرگ بزاید که هر دو آنها معادل جفت قلوی خودش باشند. بسیاری از گیاهان با فرستادن ریشه های زیرزمینی به اطراف تکثیر میشوند در این مورد شاید بتوان گفت در واقع رشد صورت میگیرد نه تولید مثل اما اگر دقت کنید بین رشد و تولید مثل غیر جنسی تفاوت نسبتا کمی وجود دارد چون هر دو تقسیم ساده سلول به صورت میتوز انجام میگیرد گاهی گیاهانی که با تولید مثل گیاهی به وجود می آیند از والد خود جدا می شوند در موارد دیگر، مثلا درخت نارون ریشه زیرزمینی به همان صورت باقی می‌مانند. در واقع کل یک درخت نارون را می یک گیاه در نظر گرفت. حال سؤال این است. اگر شته و درخت نارون تولید مثل جنسی ندارند، چرا بقیه که ما باید برای بچه دار شدن چنین راه طولانی؟ یعنی آمیختن جنهایی ما با جنهای یک فرد دیگر را طی کنیم. شاید غضیه شده ایم. اصلا جنسیت داشتم؟ این روش عجیبی که در تقابل با تولید مثل سرراست است. از کجا پیدا شده است؟ فایده از چیست؟ برای یک متخصص تکامل. پاسخ به این سوال آسان نیست. اغلب تلاش های جدی برای پاسخ به این سوال از استدلال های پیچیده ریاضی کمک میگیرد. راستش را بگویم من میخواهم او را نشنیده بگیرم. فقط یک چیز میگویم، وان اینکه حداقل تا حدی که مشکل نظریه پردازان در توضیح تکامل جنسی به این واقعیت برمیگردد که آنها بر حسب عادت فکر میکنند. افراد سعی دارند ژنهایی را دا که زنده زند اند زیاد کنند در این صورت به تناقضی در جنسیت برمیخورید، زیرا برای اینکه فرد بتواند ژن‌های خود را منتشر کند روش ناکارآمدی است هر بچه فقط پنجاه درصد ژن مادرش را در خود دارد. پنجاه درصد بقیه را از شریک جنسی مادر خود گرفته است. فقط در صورتی که مادر مثل شده بچه را به صورت نسخه کامل خودش بیرون بریزد صد درصد هایش را در بدن بچه اش به نسل بعد منتقل می کند. این دوگانگی آشکار. بعضی نظریه پردازان را به سمت گروه گزینی سوق داده است. چون در آن صورت نسبتاً به سادگی میتوان تصور کرد که در گروه گزینی به جنس برتری داده شود. چونان که و WF بودمر به روشنی بیان کرده است، جنسیت باعث می شود جهش برتری که جداگانه در افراد متفاوت رخ داده اند راحتتر در یک بدنم باشته شوند. اما اگر استدلال این کتاب را دنبال کنیم، و هر فرد را ماشین بقایی بدانیم که از دور هم جمع شدن کوتاه مدت جنهای پر عمر درست شده است این تناقض کمرنگتر تر می شود آنگاه از دید کل یک فرد کارایی بی ربط به نظر می رسد جنسی بودن در مقابل غیر جنسی بودن مانند یک ویژگی مربوط به یک ژن می شود درست مثل ویژگی چشم آبی در مقابل چشم قهدهی ژن جن جنسیت برای رسیدن به اهداف خود، همه ژن‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبق تعریف، ژن چلیپایگی هم همینطور است. حتی ژن‌هایی هستند به نام جهشگر که در میزان اشتباه های نسخه برداری جنهای دیگر دستکاری می‌کنند. طبق تعریف، اشتباه در نسخه برداری به ضرر ژنی است که بعد نسخه برداری شده است. اما اگر این اشتباه به نفع جن جهشگر خودخواهی باشد، که عامل ایجاد آن است آن ژن جهشگر در خزانه زیاد می شود و همین ترتیب اگر چلیپایگی به نفع جنی باشد که آن را انجام می دهد همین دلیل برای وجود آن چلیپایگی کافی است و اگر تولید مثل جنسی در مقایسه با غیر جنسی به نفع جن تولید مثل جنسی باشد همین توضیح برای وجود تولید مثل جنسی کفایت می کند این که آن فرد از همه ژن‌های دیگر سود ببرد یا نه مهم نیست از دیدگاه ژن جن خودخوا جنسیت اصلا چیز عجیبی نیست مثل اینکه این بحث کم کم دارد وارد یک دور باطل می شود زیرا وجود جنسیت پیش نیازی است برای کل زنجیره استدلال منجر به اینکه ژن را واحد انتخاب در نظر بگیریم به نظر من برای گریز از این چرخه راهی وجود دارد ولی جای بررسی آنها این کتاب نیست. جنسیت وجود دارد، همین و بس. در نتیجه جنسیت و چله‌پایگی است که یک واحد کوچک ژنی یا ژن را میتوان نزدیکترین چیز به یک عامل مستقل و بنیادی تکامل در نظر گرفت. تنها جنسیت نیست که با در نظر گرفتن خودخواهی برای ژن از تناقض آن کاسته میشود. علاوه بر این معلوم می شود که مقدار دی ای موجود در هر زیست من بیش از حداقل لازم برای آن است مقدار زیادی از دی ای اصلا به پروتئین ترجمه نمی شود زیرا از نظر یک موجود عالی در این موضوع تناقض وجود دارد اگر هدف دی ای نظارت بر ساختمان بدن باشد چرا مقداری از دی ان ای چنین کاری را انجام نمیدهد؟ زیستشناسان سعی در متوجه شوند این دی‌ان‌ای بظاهر مازاد به چه درد می‌خورد. اما از نظر ژن خودخوا تناقضی در کار نیست. هدف اصلی دی‌ان‌ای ماندگار بودن است، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. ساده‌ترین راه برای توضیح دی‌ان‌ای اضافی این است که آن را انگل یا به شکل بهتر یک مسافر اضافی در نظر بگیریم. که مجانی سوار ماشین بقایی شده است که دی ای های دیگر ساخته اند. بعضی ها نسبت به چیزی که در تکامل ژن اضافی در نظر گرفته شده اعتراض دارند. آنها چنین استدلال میکنند که این کلی یک فرد است که همراه همه ژن های خود زنده میماند یا میمیرد. امیدوارم در این فصل به اندازه کافی نشان داده باشم که من با این موضوع مخالفتی ندارم. درست همونطور که کل قایق در یک مسابقه برنده یا بازنده می شود در واقع کل یک فرد است که می میرد یا میماند و نزدیک نمودی نمودی که انتخاب طبیعی دارد در سطح افراد دیده می شود اما نتایج دراز مدت مرگ غیر تصادفی افراد و توفیق در تولید مثل خود را به صورت تغییر بسامد ژن در خزانه ژنی نشان می دهد با کمی احتیاط می توان گفت خزانه ژنی امروز همان نقشی را برای همتاسازهای امروزی دارد که سوپ آغازین برای همتاسازهای نخستین داشت اثر جنسیت چلیپایگی و کروموزوم حفظ موجودی معادلهای امروزی آن سوپ است با جنسیت و چلیپایگی خزانه ژنی خوب زیر و رو شده و جنها بر می‌خورند. تکامل تکامل است که در طی آن شمار بعضی از جنها زیادتر و بعضی کمتر می شود. خوب است بنا اینطور بگذاریم. کر و خواستیم تکامل برخی از ویژگی ها مثلا رفتار ایسار گلانه را توضیح دهیم. فقط از خودمان بپرسیم این ویژگی چه اثری روی بسامد ژنهای خزانه ژنی خواهد داشت گاهی صحبت از جن کمی خسته کننده می شود و بهتر است برای روشن و کوتاه کردن موضوع از استعاره استفاده کنیم ولی باید مواظب و مطمئن باشیم که به موقع می توانیم استعاره ها را به زبان ژنی ترجمه کنیم و برگردانیم از نظر ژن خزانه فقط نوع جدیدی از سوپ است که ژن در آن به سر میبرد تنها زیز عوض شده این است که امروز زندگیش را از طریق همکاری با گروه های متوالی همراهانی میگذراند که اعضای آن خزانی جنی و در ساختن ماشین های بقای موقتی شریک اویند در فصل بعد به خود ماشین بقا و به این مفهوم میپردازیم که ژنها رفتار آنها را کنترل میکنند پایان